اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق به نام خداوند بخشنده بخشایشگر سوگند به آسمان و کوبنده شب و ما ادراکم الطارق و تو چه می کو بنده شب چیست؟ نجم الثاقبه همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکی هاست این کل نفس لما عليها حافظ به این آیت بزرگ الهی سوگند که هر کس مراقب و محافظی دارد انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است مما از یک آب جهنده آفریده شده است من الصلب آبی که از میان پشت و سینه ها خارج می شود انه مسلما او خدایی که انسان را از چنین چیز پستی آفرید میتواند او را بازگرداند یوم در آن روز که اسرار نهان انسان آشکار میشود زم له من ول و برای او هیچ نیرو و یاوری نیست و الرجع. سوگند به آسمان پرباران ذات الصدع. و سوگند به زمین پرشکاف که این قرآن سخنیست که حق را از باطل جدا می و, هو و هر شوخی نیست آنها پیوسته هیله حیله می کنند و من هم در برابر آنها چاره می کنم حال که چونین است کافران را فقط اندکی مهلت ده تا سزای اعمالشان را ببینند